هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند جان و خیرت سلام و درود بر شما همراهان شبانه رادیو جوان ایران زمین سرزمینیه که در منطقه خاور میانه شکوفاترین فرهنگ ها رو از میون قدیمی ها به خودش اختصاص داده بخشی از ادبیات شفاهی مردمان سرزمین پهناور ایران رو افثانه های زیبا و شنیدنی در برگرفته که تنوع و گستردگی اونها خیلی زیاده در برمیه این هفته هزار افسانه افثان، افسانه ایرانی براتون نقل میکنن به نام شاهزاده و قورباغه برگرفته از کتاب افثانه های مردم ایران گردآوری جمیله فراهانی وارم تا پایان نقل این افسانه همراه ما باشید داری در گذشته خیلی دور پادشاهی زندگی می‌کرد کرد که سه پسر داشت روزی پادشاه سه پسرش رو نزد خودش فرا و گفت فرزندان من حالا وقت اون رسیده که هر کدوم از شما برای خودش همسری انتخاب کنه برای این کار مسلحت در اینه که هر کدوم از شما تیری در کمون بذارین و پرتاب کنید تیر شما تا هر مسافتی که رفت و به هر کجا که رسید شما از همونجا همسری انتخاب می کنید. قبول کردن و تیر و کمون برداشتن و از قصر خارج شدن و رفتن و بر روی تپهای در نزدیکی قصر ایستادن و آماده ی تیر انداختن شدن. پسر بزرگتر تیری در کمونش گذاشته. و اونو با دقت بسیار رها کرد تیر رفت و رفت تا در وسط باغ بزرگی به زمین نشست پسر بزرگتر فوراً به اون باغ رفت و از صاحب باغ پرسید پدرجان پدرجان شما شما دختر دارین صاحب باغ نگاهی به پسر انداخت و با تعجب پرسید دختر چطور شما کی هستین پسر گفت من اه اه من پسر بزرگ هم و قصد دارم با دختر شما ازدواج کنم حالا بگو شما دختر دارین صاحب باغ وقتی این حرف رو شنید با خوشحالی و هیجان گفت بله بله بله البته که دارم قربان باعث افتخار بنده است که شما دخترم رو به همسری خودتون در بیارین قربان من دختر خیلی خوبی دارم و اونو دو دستی به شما تقدیم میکنم پسر پادشاه گفت پس آماده باشین که ما امشب به خواستگاری دخترتون میاییم صاحب باغ با خوشحالی گفت چشم چشم قدم رنجه میفرمید قربان چشم پسر بزرگتر رفت که این خبر رو به پدرش بده و بعد نوبت به پسر وسطی رسید پسر وسطی هم با دقت بسیار تیرش رو در کمون گذاشت و اونو رها کرد تیر رفت و رفت تا به در خونهی به زمین نشست پسر وسطی به طرف اون خونه رفت و متوجه شد که این خونه متعلق به مردی از طبقه آمه است در زد سابخونه در رو به روی اون باز کرد و گفت بفرمید کاری داشتین؟ پسر وسطی گفت من اومدم با دختر شما ازدواج کنم آیا شما دختر دارین؟ مرد صاحبونه گفت ای مرد معلومه که تو از خانواده بی بند و باری هستی که اینجوری به خاستگاری دختر مردم میایی. آخه چون هر چیزی آداب و رسومی داره از راه رسیدی در میزنی و بی مقدمه میگی اومدی خاستگاری دختر من <تصفيق> پدر و مادر تو به دیاد ندادن که پسر وسطی کلام مرد رو قطع کرد و گفت یک کلام بگو ببینم اصلا دختر داری یا نه مرد صاحب خونه جواب داد بله دختر دارم ولی برو و با پدر و مادرت بیا این رسمش نیست برو جوون برو پسر وسطی ناچار به قصر برگشت و ماجرا رو برای پادشاه و ملکه بازگو کرد پادشاه هم به اتفاق ست تا سوار و پسر وسطیش به در خونه مرد رفتن پسر وسطی از اسب پیاده شد و در زد مرد صافخونه وقتی پسر رو دید گفت بازم اومدی خاستگاری دختر من اونم تنها؟ و پسر وسطی به تندی جواب داد نه پدر جان نگاه کن این پدرمه مرد صافخونه سرش رو از لای در بیرون برد و دید بله بله تا سوار دم در خونهشون وایساده پسر گفت من پسر پادشاه پادشاهم اینم پدرمه ما برای خواستگاری دخترتون مرد صاحب خونه ادامه حرف پسر پادشاه رو نشنید و از شدت ناباوری از هوش رفت و نقش زمین شد خلاص قرار بر این شد که پسر وسطی پادشاه هم با دختری از طبقه عامه یعنی دختر همون مردی که بیهوش شده بود ازدواج کنه. پسر بزرگ و پسر وسطی پادشاه مراسم عروسی با شکوهی کردن و همسرانشون رو به قصر آوردن و حالا نوبت به پسر کوچیکتر پادشاه رسیده بود پسر کوچیکتر هم تیرش رو در کمون گذاشت و چشش رو بست و تیر رو رها کرد تیر رفت و رفت و رفت و افتاد داخلی برکه پسر رفت نزدیک برکه دید قرباقی توی اون شنا میکنه. پسر با خودش گفت عجب اینجا که کسی نیست من من با کی باید ازدواج کنم ها؟ یه دفعه قورباغه به صدا در اومد و گفت با من تو باید با من ازدواج کنی پسر خندهی کرد و گفت با تو مکه میشه آدم با قرباقی ازدواج کنه قرباقی گفت ولی تو باید به حرف پدرت عمل کنی یا با من ازدواج کنی؟ پسر گفت: ولی اگه برادران بفهمند با یه قورباغه ازدواج کردم، منو مسخره میکنن و کلی به من میخندن. قورباغه گفت: ولی من به تو قول میدم که از ازدواج با من ضرر نکنی. ما با هم خوشبخت میشیم و تو هم به حرف پدرت عمل کردی. پسر با ناراحتی گفت: ولی برادرام اونا من منو غرباقه گفت به حرف اونا توجه نکن تو فقط به حرف پدرت عمل کن همین بالاخره غرباقه اونقدر گفت و گفت تا پسر پذیرفت و غرباقه رو برداشت و به قصر برد و گفت پدرجان من به حرف شما عمل کردم و تیرم به برکه افتاد که این قورباغه توی اون زندگی میکرد و من باید طبق حرف شما با این قورباغه ازدواج کنم پادشاه هرچند از این ازدواج راضی نبود و دوست نداشت پسرش با قورباغه ازدواج کنه ولی چون خودش این حرف رو زده بود به ناچار قبول کرد بالاخره جشن عروسی پسر کوچیک پادشاه با قورباغه هم برپا شد مدتی گذشت پادشاه روزی پسراش رو به نزد خودش فراخوند و گفت من امروز تصمیم گرفتم جانشین خودم رو از بین شما انتخاب کنم اما برای این کار دو شرط دارم هر کدوم از شما بهتر این کار رو انجام دادید جانشین من خواهید شد سه پسر پرسیدن چه شرطی پده جان؟ پادشاه گفت شرط اولی اینی که همسر هر کدومتون تونست بهترین کلوچه رو بپزه که من تا به حال نخوردم شرط اول رو برنده شده. دو برادر بزرگتر خطاب به برادر کچکتر خودشون گفتن متاسفیم که پدر این شرط رو گذاشته. آخه قورباغه چجوری میتونه بهترین کلوچه رو درست کنه؟ متاسفیم. واقعا متاسفیم که تو شرط اول رو از دست دادی. و بعد خندیدن برادر کوچیکتر ناراحت شد ولی چیزی نگفت و یه راست به خونش رفت اون خودش هم فکر میکرد که همسرش نمیتونه ساده ترین هم درست کنه صبح روز بعد پسر اول پادشاه کلوچه ای رو در سینی زیبایی گذاشته و نزد پدرش رفته گفت پدرجان این کلوچه رو همسرم مخصوص شما پخته به به میبینین چه و بویی داره؟ اون واقعا زن با سریغه و کدبانویه پادشاه که مردی شکمپرست بود و به خورد و خوراک اهمیت زیادی میداد نگاه خریدارانی به کلوچه انداخت و گفت به به عجب رنگ و بوی دارن. مطمئنم تعم و خوبی هم داره پسر اول با هیجان تصدیح کردن گفت البته البته زن من دست بخت خیلی خوبی داره حالا بفرمید امتحان کنید پادشاه کلوچه رو توی دهنش گذاشت و گفت خیلی خوشمزه است <تصفيق> معلومه که زن چتبانویی داری پسرم پسر اول با خوشحالی گفت پدرجان خوشحالم که از و مزه کلوچه خوشتون اومده این فقط یه نمونه بود اون حتما سر فرصت براتون کلوچه های دیگه هم درست میکنه در این موقع پسر دوم هم وارد غص شد و با ورودش عطر خوشی توی فضا پیچید پادشا در حالی که بو می کشید گفت این, این بوی چیه؟ چه بوی خوبی پسر دوم با صدای بلند گفت پدرجان بفرمایید این هم ای که همسرکد بانوی من برای شما درست کرده میبینین عطرش از چند فرسقی هم به مشا میرسه پادشا سرتکون داده گفت آره آره رجب عطری دارین کلوچه درچینی بح بح بح بح من کلوچه درچینی خیلی دوست دارم بده ببینم تمون مثل عطرش دلفریبه یا نه پسر دوم با هیجان گفت البته البته, البته پدر جان مطمئن باشید تا به حال کلوچهی به این خوشمزدگی نخوردین در کدبانوی و با سلیقگی عروستون اصلا شک نکنید پادشاه کلوچه رو توی دهنش گذاشت و گفت و... خدای من این من... کلوچه چقدر خوشمزه است عجب کمی داره واقعا تو پسر و خوشبختی هستی که زنی به این چدبانوی داری از قول من از اون تشکر کن و بگو سر فرصت یه مقدار بیشتری برای من از این کلوچه دارچینی درست کنه پسر دوم با خوشحالی غرور گفت چشم پدر جان چشم پادشاه گفت هر دوی شما هم سران داریم خیلی هر دو تا کلوچه خیلی خوشمزه بودند پسر اول گفت، ولی پدرجان یکی از این کلوچه ها خوشمزه تر بود نه پدر؟ پاچه ها گفت، پسران من اجازه بدین برادر کچک بیاد شاید. همسر اونم کلوچه درست کرده. هر دو تا برادر با تمسخر گفتن، <تصفيق> بله، بله. بله مرباها کتبانوهای خوبی هستن خیلی <تصفيق> و اما بشنوید از پسر کوچیکتر پسر کوچکتر وقتی به خونه رسید به همسرش گفت پدرم میخواد جانشینی برای خودش تعیین کنه و شرط اول رو این گذاشته که همسران ما سهتا برادر بهترین و خوشمزه ترین کلوچه رو درست کنه نمیدونم نمیدونم حالا من باید چیکار کنم تو که غورباغهای و نمیتونی منم بلد نیستم تا فردان بیشتر فرصت نداریم قرباقه گفت قصه نخور امشب بخواب تا فردا صبح خدا بزرگه صبح روز سوم، پسر کوچیکتر که از خواب بیدار شد دید عطر خوشی توی فضای خونه پیچیده بلند شد و رفت سراغ همسرش دید وای وای وای کلوچه بزرگی روی میز قرار داره ولی از همسرش خبری نیسته. فهمید که همسرش به طرف برکه رفته. اونم فوراً کلوچه رو نزد پدرش برد. بوی او کلوچه تمام فضای قصر رو پر کرد. پادشاه با شتاب به استقبال پسر کوچکتر رفت و کلوچه بزرگ رو از دست اون قاپید و, و تکهی از کلوچه رو فوراً توی دهنش گذاشت و یه دفعه فریاد زد. باید! بی این کلوچه بی نظیره من این کلوچه رو انتخاب کردم به بعد خطاب به پسر کوچیکش گفت پسرم شرط اول رو تو بردی آفرین واقعا همسرت خوشمزه ای رو درست کرده دست مریضا دست مریزان. در این موقع دو برادر بزرگتر هم وارد غص شدند و از اینکه که شنیدن که پدرشون کلوچه همسر برادر کوچیکشون رو انتخاب کرده سخت ناراحت و عصبانی شدن و گفتن پدر جان، آخه چجوری ممکنه اون رو بتونه کلوچه درست کنه ها؟ اونم خوشمزده ترین کلوچه رو ما مطمئنیم اون خودش کلوچه رو درست نکرده پادشاه گفت اضافت بد نکنین بذارین یه شرط دیگر رو کنیم ها؟ شرط دوم اینه که همسران شما باید بهترین و خوشمزه آش رو درست کنن حالا زود برین و در تیهی آش به همسرانتون کمک کنیم پسر کوچکتر به خونه که رسید با خوشحالی گفت عزیزم عزیزم کلوچه ای که تو پخته بودی به نظر پدرم بهترین و خوشمزه ترین کلوچه بود ما شرط اول رو بردیم و حالا باید آش درست کنیم این شرط دوم پدرمه قرباقه گفت قصه نخور بگیر راحت به تا فردا خدا بزرگه پسر با خودش گفت من باید سر از کار زنم در بیارم خیلی درم میخواد بفهمم اون چجوری این کار رو انجام میده؟ شب که شد پسر خودش رو به خواب زد و گرباقی که فکر میکرد شوهرش خوابه توی آشپزخونه رفت پسر آروم بلند شد و به دنبال گرباقی رفت. و دید که گرباقی در عرض چند دقیقه به دختر بسیار زیبایی بدل شد پسر با تعجب گفت خدایا چی میبینم این سن منه که به شکل دختری زیبا در اومده باور نکردنیه خدایا پسر طاقت نیاورد و به اون نزدیک شد دختر که ترسیده بود گفت من،, من من من من پسر گفت فقط فقط بگو چجوری شبها دختری زیبا میشی و روزا قورباغه خواهش میکنم دختر گفت مرد چادوگری منو چادو کرده اون داشت با من ازدواج کنه اما چون من نپذیرفتم منو به قورباغه تبدیل کرده پسر با تعجب گفت ولی ولی تو فقط روزا به شکل گورباقهی و شبها دختر کلام همسرش رو قطع کرده گفت اون مرد چون شبها میخوابه من به شکل اولیه خودم در میام و روزها که بیدار من قورباغه میشم حالا اگه میخوای من همیشه به صورت اولی هم باقی بمونم باید این جادوگر رو وقتی که خوابیده در شب چهار که قرص ماه کامله نابود کنی وگر نه غیر از اون شب دیگه اون جادوگر نخواهد بود خلاصه دختر آش رو آماده کرد و فردا صبح زود پسر آش رو به قصد برد قبل از اون دو برادر دیگش آشی رو که همسرشون تهیه کرده بودن به حضور پادشاه آورده بودند پادشاه هر تا آش رو تایید کرد از طعم و مزه اونا حسابی خوشش اومد اما وقتی آش همسر پسر کوچیکش رو امتحان کرد دید که به به به به چه آشی به این ترتیب پادشاه این بار هم از آش پسر کوچیکش خوشش اومد و اونو بهترین و خوشمزه ترین آش انتخاب کرد و اما بشنوید از پسر کوچیک پادشاه و مرد جادوگر پسر اسبش رو سوار شد و به همون کوهی رفت که جادوگر در اون زندگی می کرد. اما سر راهش به جنگل بسیار تاریک و وحشتناکی رسید پسر پادشاه از حیوانات این جنگل ترسناک نترسید و رفت و رفت تا به کوه رسید جادوگر تو خواب بود پسر پادشاه چیری زهرالود توی کمونش گذاشت و به طرف مرد جادوگر پرتاب کرد. تیر درست وسط پیشونی جادوگر خورد و جادوگر در جا آتیش گرفت و سوخت. صبح روز بعد که پسر پادشاه به خونه برگشتید همسرش غورباغه به دختر زیبایی تبدیل شده و در آستانی در به انتظار اومدن اون ایستاده. چند روز بعد پادشاه پسر کوچکش رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد و پسر به پادشاهی رسید افسانه ایرانی شاهزاده و غورباغه رو امشب براتون نقل کردم برگرفته از کتاب های مردم ایران گردآوری جمیله فراهانی تأثیر افسانهها و قصه ها در آدمی واقعا زیاده در تقویت و قوی حافظه خیلی موثره افسانهها و قصه های آمیانه بی بیتاریخ و بیزمانند و عشق به قصهگویی و افسانه پردازی و شنیدن قصه و افسانه در تمام طول تاریخ تمدن با آدمی همراه بوده امیدوارم که از نقلی این لذت برده باشیم هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار الهام اشجب اجرا مهران دوستی صداوردار عبالفضل بینامی تیه کننده زهرا عبدالله زاده یکیگر به